فصل چهارده در تابستان سال 1934 پدرم آماده یه فیلم عصر جدید شد لازم نبود استودیو را دوباره سر سامان دهد و به فعالیت بیان نزد. کادر فنی و هنری او دست نخورده باقی مانده بود زیرا در چهار سال گذشته حتی هنگامی که کار به کلی تعطیل بود حقوق همه را پرداخته بود به نظر من شایسته یادآوری است که پدرم از همان اوایل هنگامی که اتحادی ها در پیشگان در کار نبود و استودیوهای دیگر بعد از تهیه هر فیلم همه ی کارکنان خود را بیرون می‌کردند و در صورت لزوم برگ فیلم بعدی کارکنان جدید استخدام می نمودند به این از دخلاق پاوند بود که کارکنان خود را نگه دارد. وفاداری و علاقه فوقلاده کارکنان استودیو را به پدرم به همین حساب ب این علاقه و وفاداری در آن روزگار در همه شهر مشهور بود و روزنامه ها مطالبی درباره آن می نمشتند. پدرم نیز همان علاقه و وفاداری را به کار خود داشت. وقتی فرانکانتونز رئیس قسمت حمل و نقل او به علت قلبی قادر به کار نبود، پدرم او را از کار مرخص کرد ولی حقوق او را مرتبا می پرداخت. من خبر دارم که او مراقب زندگی بسیاری از همکاران قدیمی خود از جمله ادنا ویانس ستاره سابق فیلم‌های او و رولان توتر فیلمبردار فیلم‌های سامت و دیگران بود. من نمیتوانم بگویم که چقدر افراد از سخاوت و گشاده دستی او می می‌شدند، زیرا پدرم در این زمینه اصلا اهل تظاهر نبود. ولی میدانم که رابطه بین کارکنان و صاحب کار در استودیوی پدرم مانند روابط بین اعضای یک خانواده بود. چون مدرسه ما تمام شده بود و می توانستیم در روزهای هفته هم مثل روزهای تعطیل پدرمان را ملاقات کنیم، امکان آن را داشتیم که از تدارکات استودیو باخبر شویم. زیرا پدرمان اغلب ما را به استودیو می برد. همین که قدم به استودیو می گذاشت، عوض می شد. به هیجان می آمد و فعالیت و تحرکش به حد احلا می رسید. در جهان خارج از استودیو هرچه بود، در اینجا به فرمان روای بی و چرا بدل می و هر کلامش در حکم قانون به شمار می رفت. با وجود که کوچک بودن به یاد می آورم که همه کارکنان استودیو از نجار گرفته تا مدیر تهیه فیلم به او احترام می گذاشتند. فقط، یک نفر در استودیو بود که با پدرم به بحث و گفتگو پرداخت. این هم کار قدیمی او آلف ریوز بود که کنون تصدی امور کارپردازی استودیو را به عهده داشت. به یاد دارم که آرف در دفتر تاریک خود که گویی فقط با الماس درشت نگین انگشترش روشن می پشت میزش می نشست. اگر پدرم زیاد و بر او می و به کارهایش مداخله می بود از دست پدرم اصواری می شد. و به آن لحجه انگلیسی آمیانش که با وجود سالها اقامت در آمریکا عوض نشده بود می گفت خب چارلی برو بیرون کار دارم. و پدرم بدون هیچ بحث و جدلی از دفتر او بیرون می رفت. دفتر آلف تنها جایی در استودیو بود که کسی می توانست پدرم را از آن بیرون کند. پدرم بر همه دیگران ریاست تام داشت. خودش نویسنده ی سناریو، تهیه کننده، کارگردان، طراح اصلی، آهنگساز، مونتاژ کننده و گریمور بود. همه چیز بود. نگاهی به فیلم های چارلی چاپلین بیاندازید تا این نکته بر شما معلوم شود. پدرم چنتا از بهترین حسابداران آن منطقه را در استخدام خود داشت و خدا میداند که چه بی پروانه ها را به کار می کشید. با وجود این همه تخصص او از اندرز دادن و توصیه کردن به آنها خودداری نمی کرد. ساعتهای متوالی با مدیر تهیه فیلم بر سر قیمت تهیه یکی از لوازم صحنه چانه می با این وصف، تهیه فیلم اصر جدید برای او یک میلیون و نیم دلار خرج برداشت. و این رقم در آن روزگار یک رقم نجومی در بودجه تهیه فیلم ها بود. پدرم همیشه در مسائل مربوط به پول روش مخصوص و غیر داشته است و به همین جهت افسانه ها در این باره برای او ساختند و در سراسر هالیوود سر پخش کردند. از جمله این افسانه های شوخی آمیز یکی این است وقتی چارلی شاپلین با کمپانی میوچول قرارداد امضا کرد به جای 1000 دلار دستمزد هفتگی که کمپانی پیشنهاد کرده بود هزار و بیست و پنج دلار خواست گفته میشد این بیست دلار را برای آن میخواست که فقط با آن زندگی کند هر وقت برای غذا خوردن به رستورانی میرفت صرف نظر از اینکه سرویس خوب بود یا نه ده درصد قیمت غذا به پیشخدمت انعام میداد خصوص اگر میفهمید او را شناختند در این میزان ده درصد اصرار خاصی داشت چون به حساب خودش اطمینان چندانی نداشت، صورت حساب را به پولت یا ستیدنی یا من میداد که مقدار درستان را تا دینار آخر حساب کنیم. بعد ممکن بود به یک سلمانی برود و به او که پدرم را نمیشناخت و انتظاری هم نداشت ولی کار خود را خوب انجام داده بود پنج دلار انعام بدهد. او از همه وسایل تا آخرین حد ممکن استفاده می کرد. حتی ته مدادها را دور نمیانداخت و به وضع عجیبی ناراحت میشد اگر در این موارد اصراف کاری بشود و میگفت میدانید مداد هم پول بالایش رفته است او این فکر جویی را چنان در کارکنانش رو سوخ داده بود که در سراسر دوران تهیهٔ فیلم اصر جدید میکوشیدند هرچه ممکن است صرف جویی کنند و دیناری را هدر ندهند داستانی شایع است که کارکنان او آنقدر با صاحب خانه که میخواستند از خانه‌ی او برای که صحنه استفاده کنند چانه زدند که قیمت اجاره را از روزی 25 دلار به 5 دلار رساندند اما آنها کار صرفه‌جویی را از این حنجرو تر بردند به این بهانه که فیلم برداری روز اول و دوم خوب نشده است و آنها روز سوم را برای دستکاری در فیلم بگذارندند از پرداخت 5 دلار آخر خودداری کردند در همان حال ممکن بود پدرم مبالغ زیادی را با یک شانه انداختن دور مثل این بود که وقتی مقدار پول زیاد میشد و به مبالغ هنگفت دسید، پدرم از درک اهمیت مقدار و واقعیت مبلغ عاجز میماند. جوزف شنگ تهیه کننده که بعدن خودش هم دچار اشکالات مالیاتی شد، داستانی میگوید که پدرم بعد از آنکه میزان مالیات های عقب افتاده را فهمید چه مری از خود نشان داد. وکلای پدرم دائم بر سر میزان مالیات با دولت کشمکش داشتند. آقای شنگ به یاد میآورد که پدرم در هتلی در نیویورک بود که بکلایش آخرین خبر درباره نتیجه این دعوای مالیاتی را برایش آوردند. آنها با کمی ترس گفتند: ما موافقت کردیم که یک میلیون دلار بپردازیم. و انتظار داشتند که پدرم هر صده از جا بپرد. اما پدرم فقط بلند شد و به طرف پیانو رفت که پیانو بزند گفت خوب خوب شد که تمام شد بیایید خوش باشیم پدرم در این اوقات چنان غرق در کار بود که گاهی به ما تلغین می کرد و می گفت به سراغش نرویم ما این ممنوعیت را به دل می گرفتیم و آزرده میشدیم. در آن موقع ما با بچه های همسایه رفیق شده بودیم آن طرف خیابان روبروی خانه ما سه برادر که زندگی میکردند. پدرشان سالها در چین غازی بود و همه خانواده زبان چینی بلد بودند. غیر از آنها خانواده هارالد لوید بودند که در پایین تپه در خانه کاخمانند مانند زندگی میکردند. مساحت خانه و زمین آنها به مراتب بیش از مال ما بود. آنها حتی یک زمین گلف و یک شنا داشتند که با خیابانهای پردرخت و فواره هایش مثل یکی از های تاش محل به نظر می آمد. من و سید دوست داشتیم با دخترهای لوید، پگی و گلوریا معاشرت کنیم از همان اوایل من پایم پیش گلوریا فرو رفته بود گرچه هیچ وقت قرار جداکانه نداشتیم بعضی وقتها این دخترها برای دیدن به خانی ما می آمدند. در حالی که هارولد برادر کوچکشان دنبالشان بود ما و بچه های و لوید و چند دیگر در روزهای تعطیل با هم خیلی خوش بودیم پدرمان که کار داشت نمی ما را ببیند ما هم جرأت پیدا کردیم که از او خواهش کنیم نظرش را تغییر دهد و بگذارد آنها به خانه ما بیایند او هم سازش کرد و گفت خیلی خوب موافقم به شرطی که خیلی سر و صدا نکنید ما میدانستیم که این گذشت شامل حال دوستان ما نمی شود از مدتها قبل یاد گرفته بودیم که بدون اجازه قبلی پدرم از آنها خواهش نکنیم که به خانه ما بیایند زیرا پدرم در یک از آن مراحل افسردگی بود و نمی‌خواست در آن دروبر کسی باشد که برایش مزاحمت ایجاد کند پدرم در این مواقع یک احوالپرسی پرسی مختصری می کرد و از پنده ها بالا می رفت و تا موقعی که مهمانان ما خانه را ترک نکرده بودند دیده نمی شد. و بعد ما را سرزنش می کرد که شما باید به پدرتان احترام بیشتری بگذارید. قبل از اینکه کسی را به خانه بیاورید باید به پدرتان اطلاع دهید در سراسر توابستان آن سال پدرم چه در خانه و چه در استودیو با پولت کار می کرد و ما سیدنی به حال پلت قصه می‌خوردیم در حالی که واقعاً لازم نبود قصه بخوریم پولت راه و روش درستی داشت و میدانست همیشه چگونه رفتار کند که برنده باشد او به پدرم می گفت "آه، چارلی راستی باید کمی استراحت کنی بگذار امروز را تفریق کنیم هم برای ما و هم برای بچه‌ها خوب خواهد بود پلت همیشه ما را به داخل اتاق می‌برد چون هم خودش به ما علاقه شده بود و هم میدانست که چگونه میتوان با تکیه بر قریزه پدری پدرم او را تحت تأثیر قرار داد. صمیمیتی که پدرم از ما می میداشت مانند باری بر او سنگینی میکرد و از نیرویش میکاست. ناگهان کار را رها میکرد. تعلیم و کنفرانس و رسیدگی به جزئیات استودیو را کنار میگذاشت و به اتفاق من و سیدنی و پولیت، برای یک گردش تمام روز بیرون می‌رفتیم. معمولا ما گردشگاهی را که در اوشن پارک یا پارک اقیانوس بود انتخاب می‌کردیم. در بین راه پدرم برای ما داستان‌های تارزان را می‌گفت. یادم می‌آید که در صندلی عقب اتومبیل نشسته بودیم و او از خودش برای ما داستان می‌بافت. این داستانها را از کتابهای کودکان نگرفته بود و اصلا من شک دارم که پدرم در عمرش یکی از این داستانها را خوانده باشد. همه اینها را از خود در من و سیدنی وقتی به گردشگاه کنار دریا می رسیدیم، فاصله کشف میکردیم که پدرم و پولت هم چندان از ما سنتر نیستند. وقتی پدرم با قدمهای موزون و جهنده در کنار اقیانوس قدم میزد و به این طرف و آن طرف نگاه میکرد چشمانش از خوشی میدرخشید موسیقی خیابانی فروشندگان آشامیدنی و هوای خوش او را به حیجان میآوردند و لذت میدادند من و سیدنی موتوری را دوست داشتیم گاهی هم پولت با ما سوار آن میشد اما هرگز نتوانستیم پدرم را به سوار شدن در آن قانع کنیم. او بیشتر دوست داشت سوار بلم شود. این برانورد شدن بلم برای ما ناراحت کننده بود، اما پدرم آن را تفریحی با ارزش میدانست. اما بیشتر از همه او سرگرمی های را دوست میداشت که در آن نشانه گرفتن باشد. مثلا انداختن گوی های کوچک به داخل بطری شیر یا انداختن حلقه روی چوب. بهترین سرگرمی او در آنجا بود که وقتی تیر به نشانه میخورد خوک کوچک از لانه بیرون می‌آمد. روی که کودکان سر میخورد و به جای خود میرفت. پدرم به این منظره خوک کوچک مثل دیگران می خندید. پدرم آنقدر به این گردشگاه آمده بود که صاحبان آن همه او را می‌شناختند و نقط ضعف او را می دانستند. وقتی از کنار دستگاه یکی رد میشد صاحب آن فریاد میزد، آهای چارلی، از اینور بیا، این یکی رو امتحان کن دیگری داد می زد. چارلی، بیا اینجا، چارلی گاهی پدرم از سر و صدایی که به خاطر او ایجاد شده بود از میشد و چنان به جلو خیره نگاه میکرد که گویی اصلاً صدا رو نشنیده است او با لحنی توتگرانه به من بستید نیمی به حرفشان گوش ندهید ما آن بازی رو که دلمان بخواهد میکنیم. اگرچه چپ دست بود اما نشانگیر خوبی بود. هایی را که گیر آورده و برده بود جمع کرد و آخر سر با عروسک و یا حیوانات از کاه پر شده عوض مینمود. وقتی معامله‌گران می‌خواستند سر او را کلاه بگذارند، به دقت بلیت های خود را می‌شمرد و به آنها تحویل می‌داد. حتی در مورد حیوانات کاه آگنده و عروسک که معمولاً آنها را به من واصیت نمی‌داد. نمیخواست کسی کلاه سرش بگذارد. پدرم از این گردش‌ها شاداب و تازه نفس می‌شد. روز بعد دوباره در کار غرق می‌شد چنان که گویی نگردشگاهی در کار بوده است، نه موسیقی خیابانی و نه رنگ‌ها و صداهای خوشایند گردشگاه و کارنوال آن. هرچه زمان تحیه فیلم اصر جدید نزدیک میشد، پدرم بیشتر مراقب دو بیماری مزمن خود درد مده و سرماخوردگی می گشت. وقتی هنوز کار بیماریش به جای باریک نکشیده بود، او به وسیله دبا درمان خانگی که در آن استاد بود، خود را می کرد. یکی از پادزرهای مورد علاقه او برای ترش کردن، قرص آلکاسلتزر بود. گاهگاه گاه، وقتی میدید بیماری دارد شروع میشود، آن را میخورد. تقریباً همه شبهای تابستان، فرانک سرمستخدم، بی آنکه به او بگویند یک قرص آلکاسترد زر و یک لیوان آب را میآورد و پدرم مثل آنکه وظیفه مذهبی است، آن را تا ته مینوشید. برای مراقبت از سرماخوردگی، فقط یک پنجره اتاقش را کمی باز میکرد. یا اگر میدید هوا خیلی بد است همه پنجرهها را میبست. از کوران یا جریان هوا حتی در هوای گرم خیلی میترسید و آن را خطرناک می شه مرد. وقتی کار میکرد یا مجذوب چیزی شده بود، فقط یک وزش هوا میتوانست او را از جا بپراند و توجهش را جلب کند. همه طرف را نگاه میکرد تا ببیند نسیم از کجا آمده است. یک پنجره باز پیدا می‌کرد و در یک چشم به هم زدن آن را می‌بست. گاهی اوقات می‌دیدم که در اتاق خود علاوه بر عرقگیر، و شامر هم پوشیده است. برای من توضیح می‌داد، برای آن پوشیدم که عرق کردم و نمی‌خواهم سرما بخورم. ولی مراقبت او از سلامتی خیش به هیچ وجه دلیل اینکه که مرض خیالی داشت نبود. در جریان تایه فیلم بی رحمان خود را به آب آتش می زد و حتی گاهی خواب و خوراک را فراموش می او فقط به یک دلیل از بیماری وحشت داشت. اگر مریض شود و کار را قطع کند خیلی برایش گران تمام خواهد شد. در مورد فیلم روشنایی های شهر همینطور هم شد.